لبش میبوسم و در می کشم می به آب زندگانی بردم پی من رازش میتونم گفت با کس نه کس را میتونم دید با وی لبش میبوسد و خون می خورد جام روخش می بیند و گل می کند خی بده جام می و از جم مکن یا کی میداند که جم کی بود و کی کی بزن در پرد چنگی ماه مطرب رگش بخراش تا بخروشم از وی گل از خلوت به باغا ورد مسند بساوت زوه تمچون قنچه کنتی چو چشمش مست را مخمور مگزار بیاد لعلش ای ساقی بدهمی نجوید جان از آن قالب جداوی که باشد خون جامش در رگ و پی زبانت در کش ای حافظ زمانی حدیث بی زبانان بشنو از نی